دلیل وجود خدا و جهان جاودان و مقایسه باورها کدام یک از این گروهها میتوانند موجب سعادت انسان و نجات جهان شوند ناباوران یهودیان زردشتیان مسیحیان مسلمانان یا بهایان کتابی از دکتر هوشی مطلق هستی ما و سرنوشت ما در این دنیا مانند پرواز پروانه پس از لحظه ای از گلی به گلی و از باقی به باقی دیگر است. آیا لازم نیست بدانیم که پس از پرواز روح ما از این دنیا پروازهای دیگر در انتظار ماست؟ در کلمات مکنونه حضرت بهاءالله چنین می‌فرمایند: پس با دل پاک و قلب طاهر در ایام عمر خود که اقل از آنی محسوب است باش تا به فراغت از این جسد فانی به فردوس معانی راجع شوی و در ملکوت باقی مغر یابی. بنابر اراده یزدان باید از جمیع نعمتهای این جهان بهره بریم. اما از آن وارسته باشیم، نه به آن بسته، و از سختی های آن ناامید و دلخسته زیرا پس از این سرا سفری جانپرور و جاودانی در انتظار ماست لازمه آرامش و کامرانی ما آگاهی ما از دوام و بقای روح ماست بخش اول یگانه راز خوشبختی و یگان راه به یافتن آن دو بخشش بزرگ یزدان به انسان دانش و بینش نخستین گام به سوی خوشبختی خودشناسی است و لازمه خودشناسی آگاهی از نقشه آفرینش انسان است هرچه آگاهی ما بیشتر شادی ما بیشتر در سفر به سوی سرنوشت لازم است بدانیم که هستیم چه هستیم چرا به این جهان آمده ایم، به کجا می رویم و چه قناعه در درون داریم پروردگار روح ما را به دو زیور بیمانند آراسته و به دو بخشش جاودان ممتاز و مفتخر فرموده دانش و بینش بینش یا بینایی درون چشم روح ماست و دانش نور آن برای شناسایی اسرار آفرینش انسان و مشاهده زیبایی ها و شگفتیها و حکمت های نهفته در آن دانش و بینش مانند دو بال پرنده لازمه یکدیگرند پرواز در آسمان جانفضای عشق و آگاهی با یک بال ممکن نیست این دو بال به یاری یکدیگر منظر ما را از زمین به آسمان میبرند و سرنوشت جاودانی ما را به ما مینمایند. نمایند هرچه منظر ما بلندتر و دایره دید ما گسترده آرامش ما بیشتر روح ما شادتر و زندگانی ما روشنتر است از آن منظر همه چیز در حد کمال و است. از آفریننده گیتی جز کمال و زیبایی چه انتظاری می توان داشت بدون یاری و همکاری بال دانش و بینش کامرانی و شادمانی جاودان برای انسان ممکن نیست بدون نظر به گیتی از منظری بلند زندگی بی هدف و بی معناست بدون آن منظر روزگار، تار و قبارانگیز است زیستن در قصری تاریک با چشمانی بسته است در زندگانی انسان نادان و کردل جز سرگردانی و رنج و ناکامی چه انتظاری میتوان داشت چه مردمانی که در آرزوی جام خوشبختی پیوسته میدوند به هر دری میزنند و به هر دارو و درمانی پناه میبرند، بدون اینکه بدانند که این معشوق گم شده از خود آنها به آنها نزدیکتر است بدون اینکه بیاندیشند که بذر بی این آرزو در روح و قلب آنها نهفته است تنها لازمه دستیافتن به این معشوق آبیاری و پرورش. این بزر است تنها راه یافتن این گم شده ناپیدا پرواز در فضای جانفزای عشق و آگاهی با بالهای بینش و دانش است بدون این پرواز ایمنی و شادمانی جاودان برای انسان ممکن نیست آفریننده ما چنین خواسته و بر صفحه تقدیر نگاشته. اگر در سفر به سوی سرنوشت با قلبی پاک و وارسته از دانسته های پیشین و عزمی راسخ و پایدار در پی معنا و مقصود زندگی گام بردارید، اسرار آفرینش انسان و زیبایی های نهفته در آن را به چشم جان، روشن و تابان خواهید دید. پروردگار بذر این بخشش بزرگ و بیمانند یعنی چشم بصیرت یا دید درون را در روح ما به ودیعه نهاده نور دانش را نیز از آینه پرفروغ برگزیدگانش بر ما تابیده نقش ما در این دنیا کوشش و پژوهش عشق به فروغ دانش و پرورش چشم بینش است. کشف اسرار آفرینش بر بینش ما می افزاید. ما را گام به گام به سوی جام خوشبختی پیش میبرد. برد و ها و زیبایی های نهفته در آن را به ما می نماید هرچه کوشش ما و عشق ما به دانش بیشتر بینش ما بیشتر و هرچه بینش ما بیشتر دانایی ما بیشتر و هرچه دانایی ما بیشتر صفای قلب ما بیشتر و هرچه صفای قلب ما بیشتر آرامش و شادمانی ما بیشتر بدون آگاهی از هدف یزدان در آفرینش انسان راهی به کسب بینش نیست این چنین است نقشه طراح جهان برای کامرانی و عزت جاودانی عزیزترین آفریدهش انسان این طرح در حد کمال و زیبایی است چه راهی دیگر جز این یا برتر از این میتوان تصور نمود هرچه بیشتر در این طرح بیاندی تا رمز کمال و اسرار حکمتهای نقشه آفرینش بر شما آشکارتر شود. دانش خداشناسی و دانش دنیاوی یکسان نیستند. یکی به جسم نظر دارد، دیگری به جان درس مدرسه اسرار آفرینش کیهان را به ما می آموزد. گفتار پیامبران اسرار آفرینش انسان را. دانش دنیوی گاهی به جای یاری به ما و آگاهی ما در روح ما پرده تکبر می آفریند. این پرده بر موانع دیگر می افضاید. و از بینش ما می کاهد اسرار آفرینش انسان و حکمتهای نهفته در آن در اختیار همه جویندگان است چه درس آموخته چه نیاموخته چه پیشوا چه غیر پیشوا از پروردگار عادل و مهربان جز این انتظاری نمیتوان داشت زمان زندگانی ما در این دنیا جز آنی بیش نیست تنها لحظه ای در ابدیت است مانند پرواز پروانه ای از گلی به گلی دیگر و از باقی به باقی دیگر است چقدر شادی آور است اگر بدانیم که پس از این لحظه زود گذر دیگر در انتظار ماست. ما چقدر شادیاور است اگر بدانیم که پس از پرواز پروانه روح ما از این سرای ناپایدار پروازهای دیگر بس جانبخش و روح پرور برای ما مقدر است. چقدر شادیاور است اگر بدانیم که در پس پرده این دنیای پرآشوب و پر بلا جشنها برپاست بنابرای نقشه مدیر و مدبر گیتی پس از بهار عمر و خزان زندگی در این سرای ناپایدار بهارها و باغهای دیگر با شکوفه بس زیبا و روحفظا برای عاشقان خدا محیه است هدف ما در این دنیا پرورش بذر عشق و دوستی به خود به خدا و به جمیع بندگان خداست. نقش ما در این روزهای زود گذر پاکی و صفای روح ماست آمادگی و شایستگی و تصفیه جان و روان ما برای سفری شورانگیز به سوی خداست هرچه روح ما پاکتر و مهربانتر شایستگی ما بیشتر هرچه شایستگی ما بیشتر شادی ما بیشتر عشق یزدان به دوام و بقای ما از عزیزترین و ممتازترین آفریدهاش به حدی است که نه یک عالم یا هزار آلم بلکه عالمهای بیشمار برای ما آفریده و برای هر یک از ما در هر یک از آن عالم ها لیاقت ما بهره و نصیبی مقدر داشته. اما نخستین گام در این سفر بیپایان و شورانگیز و شگفت آور تولد ما، به این دنیاست و پایه و اساس سرنوشت ما در همه آن آلم ها نیز بسته به زندگانی ما در این دنیا در این لحظه زود گذر است هرچه صفای روح ما و عشق ما به خدا و آفریده های خدا بیشتر مقام ما بلندتر و هرچه بینش ما بیشتر ارزش ما در نظر طراح آفرینش بیشتر. در سفر به سوی سرنوشت موانع بسیار در راه ماست. ما از همه دشوارتر، پیروزی روح ما بر عشق مفرط ما به ثروت و راحت این دنیاست. بندگی و بستگی ما به جلوه و جلای این دنیا است گران بر دوش ما مسافران به سوی خدا. باری که بر کندی و سختی سفر می و ما را از رسیدن به شهر مقصود باز می دارد. حضرت بها در کلمات مکنونه میفرمایند. ای فرزند هوا، از آلایش قنا پاک شد ای مقروران به اموال فانیه بدانید که قنا است محکم میان طالب و مطلوب و عاشق و معشوم زندگانی ما در این دنیا نخستین لحظه در ابدیت است آیا جایز است که در این لحظه ناپایدار به جای سیر و سفر در فضای جانفضای عشق و ایمان بالهای دانش و بینش را به هرس و آز بیالاییم و از پرواز به سوی سرنوشت جاودانی خود بازمانیم؟ آیا خردمندانه است که بدون توشه سفر و بیخبر از نقشه یزدان برای سعادت عزیزترین آفریدش انسان از این جهان شرمنده و شرمسار به عالم اسرار رویم؟ آیا خردمندانه است که ندانیم که هستیم؟ چرا به این جهان آمده ایم؟ و به کجا می رویم؟ بنابرای اراده یزدان باید از این جهان وارسته باشیم نه به آن بسته و از فنایش ناامید و دلخسته و نیز در کلمات مکنونه چنین میخوانیم. پس با دل پاک و قلب طاهر در ایام عمر خود که اقل از آنی محسوب است فارق باش تا به فراغت از این جسد فانی به فردوس معانی راجع شوی و در ملکوت باغی مقر اگر نقشه طراح آفرینش را برای سعادت انسان و بنای صلح و دوستی در جهان نادیده انگاریم جز جنگ و جدایی و افسردگی و ازتراب و ناکامی چه انتظاری داریم؟ آیا سبب سختی ها و بلاهای اصر ما جز این است که به جای راه خدا راه انسان را گرفته نخستین گام به سوی بینش کسب دانش است. آگاهی ما از نقشه یزدان، برای دوام و بقای روح ماست بدون این آگاهی زندگی تار و قوارنگیز و بی هدف و بی معناست دانش است که بر بینش می افساید و ما را گام به گام به سوی مقصود می برد هرچه دانش ما از نقشه آفرینش ما بیشتر بینش ما بیشتر هرچه کوشش ما بیشتر، ترقی و تکامل ما بیشتر. این سفر شورانگیز و شگفتاسا جاودان و بیپایان است. این نوشته افکار یک نویسنده خیالپرداز نیست. هدفش ارائه طرح تراه جهان برای نجات انسان، و برافراشتن بنیان یگانگی و صلح در جهان است. بدون تحقق این طرح، سختی و مشکلات دنیا روز به روز در افزایش بوده و خواهد بود. ما بندگان خدا مسئولیم که در این فرصت زود گذر نقش خود را بپذیریم و در تحقق نقشه یزدان برای سعادت انسان و بنای صلح در جهان هرچه بیشتر بکوشیم انتظار خدا از ما بسته به توانایی ماست هرچه کوشش ما بیشتر ارزش ما بیشتر انسانهای خودخواه و بیتفاوت و کردل که تنها در فکر راحت و آسایش خودند و نظری به دیگران ندارند از زیانکارانند و از ستمگران به خود و به دیگران آنها در تاریکی نادانی بیخبر از نعمتها و شادیهای جاودان که خدا برای آنها خواسته به سر میبرند و با شرمندگی به دیاری دیگر میروند این مردمان در نظر تراوح جهان بی ارزش و بی مقدارند. مانند الماسی که هرگز نور ندیده و زیباییهای درونش را ننموده. جمال مبارک می فرمایند. مقام انسان بلند است اگر به انسانیت مزیند. و الا پس از جمیع مخلوق مشاهده می شود امروز انسان کسی است که به خدمت جمیع من علی الارض قیام نماید زبان خرد تنها یار و راهنمای ما و تنها سخنگوی دو بخشش بزرگ یزدان به انسان دانش و بینش به ما چه میگوید و چه اندرز می دهد جمال قدم می فرمایند. زبان خرد می گوید هر که دارای من نباشد دارای هیچ نه از هر چه هست بگذرید و مرا بیابید منم آفتاب بینش و دریای دانش پجمردگان را تازه نمایم و مردگان را زنده کنم منم آن روشنایی که راه دیده بنمایم و منم شاهباز دست بینیاز، پروستگان را بگشایم و پرواز بیاموزم نخستین بخشش کردگار گفتار است و پاینده و پذیرنده او خرد اوست دانای نخستین در دبستان جهان و اوست نمودار یزدان جمال قدم و جمال مبارک دو لقب دیگرند از القاب حضرت بهارنوا برای آشنایی شما این القاب در سراسر این کتاب به کار رفته اند مطالعه و مقایسه راه‌های خوشبختی ما هر روز بامداد با که برمی‌خیزیم تا شامگاه که به خواب می‌رویم با تصمیمات بسیار روبرو هستیم بعضی تصمیمات نتایج فوری دارند بعضی دیگر نتایج دائمی آیا جایز است که در این میان برای انتخاب راه زندگانی و سرنوشت جاودانی خود تصمیمی نگیریم این تصمیم از هر تصمیم دیگر لازمتر است زیرا پیامدش ابدی است آیا لازم نیست بدانیم که عالم هستی خالقی دارد و دلایل وجودش چیست آیا لازم نیست بدانیم که مرگ پایان زندگی است یا آغاز زندگانی دیگر ؟ آیا لازم نیست بدانیم که آینها همه حدند همه از جانب خدا آمدهاند یا ی فکر بشرند ؟ آیا لازم نیست بدانیم که در میان آینها کدام یک با نیاز مردم عصر ما؟ سازگارتر است؟ کدام یک به پرسش های ما بنابر حکم خرد پاسخ می و موجب آرامش و خوشبختی ماست؟ ما بیشتر مردمان شاید 99 درصد آنان آسانترین راه را در پیش می گیرند راه های آسان چیست؟ پذیرش دین اجدادی این مردمان هر دینی که اجدادشان داشته اند میپذیرند. این کار کمترین زحمتی ندارد. نادیده گرفتن یا انکار خدا این نابابران تنها به رفع نیازهای مادی خود میپردازند و اصلا به خدا و دین و ایمان و هدف از آفرینش انسان کاری ندارند عمری به سر میبرند بدون اینکه بپرسند چرا به این جهان آمده اند آیا مرگ پایان زندگی است یا آغاز زندگانی دیگر بیخبر از نقشه یزدان برای شادمانی و کامرانی انسان از این جهان به عرصه‌ی جاودان میروند؟ اقرار به وجود خدا گروهی از مردمان با کمال افتخار به وجود خدا اقرار می کنند. آنها همین اقرار و ایمان را کافی می شمرند بدون اینکه بدانند که اقرار به وجود خدا نخستین گام در این راه است. آنچه به زندگی معنا می بخشد شناختن خداست نه ایمان و اقرار به وجود خدا. پیروی از روش‌های پیش نیازی به صرف وقت و کوشش و کاوش ندارد. در انجیل تفسیری متی فصل هفت آیه چهارده از حضرت مسیح در اشاره به تعداد این راحت طلبان در برابر پشوهشگران چنین می‌خوانیم فقط، با عبور از در تنگ میتوان به حضور خدا رسید. جاده ای که به طرف جهنم میرود خیلی پهن است و دروازه اش نیز بسیار بزرگ و همه کسانی که به آن راه میروند به راحتی میتوانند داخل شوند. اما دری که به زندگی جاودان باز میشود کوچک است و راهش نیز باریک و تنها اده کمی به آن راه میابند بدبینی به دین و فرار از اسلام علاوه بر گروه های پیش در عصر ما گروه دیگری نیز بر صحنه روزگار پدید آمده به خاطر رفتار ظالمانه حکومت اسلامی در ایران و جنگ و کشتار میان مسلمانان دیگر جهان بسیاری از ایرانیان دست از اسلام کشیده به ادیان دیگر مانند زردشتی و مسیحی و بهائی روی آورده اند. شماری دیگر از ایرانیان سرگردان و حیرانند و نمیدانند چه کنند. جمال مبارک میفرمایند، گروهی، چون کردار برخی را با گفتار یکی ندیدند از پرتو آفتاب داناوی دور ماندند و نیز می فرمایند بعضی از عباد آنچه از مدعیان محبت ملاحظه نمایند به حق نسبت می‌دهند هدف اصلی این کتاب مقایسه همه این راه هاست زیرا تنها با کسب دانش، یعنی آشنایی با همه راه های خوشبختی میتوانیم بهترین را میان آنها بشناسیم و به داوری و تصمیم درست برسیم. آیا جز این روش راهی دیگر هست؟ تنها کسانی از لطف و بخشش الهی بهره میبرند، که با انصاف و ادالت به کسب دانش پردازند. هدف از آفرینش خود را بشناسند و در تحقق آن هرچه بیشتر بکوشند این تعهد خالق ما با ماست در کتاب مقدس بخش امثال فصل یازده آیه نه می‌خوانیم. آنان که از فضیلت بهره دارند با کسب دانش نجات خواهند یافت و همچنین در همین کتاب بخش هوشه فصل چهار آیه شش اینچنین آمده تو فضیلت دانش را رد کرده ای من نیز تو را رد می کنم